بعد از ظهر آخرین روز زمستان کنار جاده باریکی که به روستای بنفشه دره می رسید از مینیبوس بوز پیاده شد. همانجا ساکش را روی زمین گذاشت و به دورو برش نگاه کرد. در چشماندازش دشت صاف و همواری دیده می شد که تا کوه پایه های دور کشیده شده بود. خاک نرم و پوک بود. سبلان باز هم رو به رویش بود اما این بار از جبهه جنوبی آن را می دید. پرهیب، مانند شطوری کوهاندار پر برف و با پار عبرهایی که مانند گردن آویز گرد قل و بریالهای سبزش آویخته بودند. این صحنه از سبلان را در کودکی هایش که همراه پدر به بنفش در را آمده بود به یاد داشت و به یاد داشت که در پندارهای کودکانش آن شطور عظیم جسه در حال حرکت به سوی مقصدی نامعلوم آرام و بی همچنان می پدر میخواست برود ده برای عروسی، و شلوار تازهش را پوشید، مادر لباس زیر برایش گذاشت تا عوض کند. اسماعیل جفت دوپایش را کرد توی یک کفش که من هم میخواهم بیایم ده. پدر عصبانی شد و سرش داد کشید. آخه بز خاله تو برای چی میخوای بیایی من یه روز بیشتر نمیمونم، عروسی که تمام شد برمیگردم. گریه کرد، پاهایش را زمین کوبید، اشک ریخت، منم میخوام بیام. بیا چیکار کنی؟ مگه تو نمیخوای بری مدرسه؟ درس نداری؟ جومه که مدرسه ندارم. شیطونه میگه بزن دهن و دماغشو خونین و مالین کنو. بدتر گریه کرد خودش را به زمین زد. در حال قلطیدم بود که مشت گره کرده یه پدرش مثل پتک نشست روی نرمه ایرانش. از درد جیغ کشید. صدای مادر بلند شد. بزن. بزن چلاقش تو دیگه چی میگی؟ این آخه برای چی میخواد بیاد؟ من که یه شب بیشتر نمیمونم بیلیت هم یه دو بیشتر نگرفتم اونم فقط برای خودم اینو کجا جا بدم رو چرله بابام بشونم مادر بالا سر اسماعیل نشسته بود و اشکایش رو خشک میکرد پس میخوای رو با این اشک چشم ول کنی بری خب میخواد بره عروسی ببینه مادر بزرگش رو ببینه نخه خانم بگو دلش برای سگا و ده تنگ شده خیلی خوب. دلش برای سگا و الاغا شده. بچه دیگه. دلش به حیوانا خوشه. پدر با چند بد و بیراه و یکی دوتا از تغفر الله نرم شد و گفت پس برای این آشغالم لباس بذار. عوضی. اسمایل گریهش بند آمده بود. اما سکسکه میکرد و دست مشت شدهش را توی کاسه چشمهایش می میچرخاند. وقتی لباس سفر پوشید و خاست راه بیفتد پایش همراهی نکرد. لنگ زد و آه کشید. مشت پدر او را از پا انداخته بود. به زحمت می توانست قدم از قدم بردارد. با دیدن این صحنه چهرهی قذبناک پدر رنگ عوض کرد. نگرانی و همدردی جای خشم خروش را گرفت. مادر چیزی نگفت فقط نگاهش کرد. دور چشمهایش اشک نشسته بود. پدر بیان که حرف بزند زانو زد تا اسماعیل دستش را روی شانه او بگذارد و کفشهایش را بپوشد. وقتی آماده شدند پدر ساک را به یک دست داد و با دست دیگر دست او را گرفت و راه افتادند اما اسمایل همچنان می لنگید مادر کاسه آبی پشت سرشان خالی کرد و آنها کوچه را پشت سر گذاشتند و به خیابان رسیدند عصر توی اتوبوسی که از میدان آزادی به طرف اردبیل می با پدر روی یک صندلی نشست گاهی وسط اتوبوس سر ها ایستاد و خسته که میشد، روی پای پدر می نشست قروب خورشید را با اشتیاق تماشا می کرد همینطور ها و دشتهای اطراف را که جا می و آنها میرفتند. غروب قروب هم جا ماند شب شد تاریکی آمد سفید رود را به صورت اجده های خفته در زیر نور ماه دید از آن ترسید از ها و سخراهای پوشیده از جنگل وحشت داشت احساس می کرد هر آن روی اتوبوس آوار خواهند شد یا ممکن بود در پس پیچی از پیچهای جاده ناگهان دیوی ظاهر شود و با یک مشت اتوبوس را مثل قوطی حلبی له کند آنها هم نابود شوند پدر او را نشاند روی زانوهایش را به خودش فشرد احساس آرامش کرد چشمهایش را بست و خوابش برد مدتی بعد با سر و صدای چند نفر بیدار شد رسیدیم آقا جون نه هنوز با چشم های به اطراف نگاه کرد کوه مثل دیواری کج و آمده بود نزدیک شیشه اتوبوس. ریشه علف ها و تخت سنگ ها دیده می شد. پس اینجا کجاست؟ حیران حیران؟ حیران شده بود ماشین نمی رفت مسافرها با هم حرف می زدند شوفر و شاگردش هی پیاده و سوار می شدند پرسید آقا جون پسیان ماشین راه نمی در همان موقع راننده با صدای بلندی گفت سیل اومده جاده رو برده همه شین. اسمایل به صورت اینوان نگاه می کرد مسافرها نگران بودند آقا جون یعنی چطور جاده رو برده؟ چیزی نیست حالا میریم پایین میبینیم باز هم دست او را گرفت و از راه را باری که وسط دوردیف صندلی حرکت کرد اسمایل آخ گفت و خم شد پدر برگشت چی شد؟ پام پام درد میک پدر دستش را فشرد و با هم از ماشین پیاده شدند. باران شلاخ کش می ریخت. آب توی جاده خاکی راه افتاده بود. کمی جلوتر کوه ریخته بود روی جاده و آن را بسته بود. چند نفر با بیل و کلنگ جاده را باز می کردند. مسافرها به اتوبوس چسبیده بودند تا باران کمتر روی سرشان بریزد. مردها کار می کردند. چند نفری به نوبت با کلنگ توده کلوخ و سنگ را متلاشی می کردند. گروه دیگر آنها را با بیل بر می داشت و میریخت توی در که تا چشم میدید درخت بود که بر شانه های هم ایستاده بودند و شرش رودی که آن پایین جاری بود اما خودش دیده نمیشد. در تمام مدتی که مردها کلنگ میزدند و با بیل گلولای خزیده روی جاده را بر می باران یک ریز می بارید و بر کمر و شانه های آنها مینشست. کم کم ماشین های دیگر هم از مقابل رسیدند و پشت سر هم صف از توی آنها چند نفر پیاده شدند و به کمک آمدند کلنگ زدند و خاک را برداشتند و خیس و خسته شدند چند ساعت بعد گلولای برداشته شد جاده نفس کشید اما تنها یک ماشین میتوانست از آن باری عبور کند راننده نشست پشت فرمان و در میان داد و فریاد راننده ها و شاگر چوفر دیگر و سلام و سلوات مسافران ترسیده و خیس و تلیز ماشین را از آن باری گذراند. مسافرها هم با سرهای به و شانههای خمیده پشت سر ماشین حرکت کردند و بالا دست آب بردگی سوار شدند با سلواتی بلند برای سلامتی خودشان و آقای راننده اتوبوس با سر و صدای زیاد دوباره سربالایی حیران را در پیش گرفت تازه گرم شده بودند که چند قطره آب روی سر اسماعیل چکید به سقف اتوبوس نگاه کرد آب باران از میان درزها راه به درون باز کرده بود و قطره قطره می چکید به سخف اشاره کرد آقا جون نگاه؟ اون بالا آب میده. پدر با آنجا نگاه کرد قطره آبی شکل می گرفت تا به موقع بچکد پدر دست روی سر گذاشت گذاشته صورت او را بر شانه خود تکیه داد و گفت اشکال نداره فردا غیرگونیش می‌کنی. ما؟ نه راننده آقا جون مگه پشتگون و ماشینو ماشین رو هم غیرگونی میکنم. ولش کن چشماتو ببن بخواب. چیکار به این کارا داری تو؟ وقل پدر خوابید. وقتی بیدار شد که ماشین توقف کرده بود. آفتاب میتابید. باید پیاده میشدند. پیاده شدند. در چند قدم اول پایش تیر کشید و درد پیچید توی جانش. اما وقتی قله بلند و پربرف سبلان را دید دیگر درد را احساس نکرد آنجا بود که گمان کرد سبلان شطور کوهانداری است که آهسته آهسته به سوی مقصدی نامعلوم می رود. پشت سر پدر در جاده باریک راه افتاد گندم ها درو شده و خرمن را جمع کرده بودند همه جا زرد و افسرده بود پاییز آمده بود اما حالا آخرین روز زمستان بود باریک راه همانطور بود که آن سال با پدر دیده بود دشت ها و تپه ها و ماهورها همه سر جای خود بودند او هم بود در آن میان تنها یک نفر نبود جای یک نفر خالی بود آن هم جای پدر جای آقا جون که دیگر نبود تا دست او را بگیرد و در آن باری که راه خالی پر پیچ و خم با هم به طرف ده بروند باز هم جای مشت پدر روی نرمه راستش درد بگیرد احساس کرد باز هم همانجا درد گرفت یک درد قدیمی و دوست داشتنی به نظرش رسید کمی می لنگد یا دوست دارد که کمی بلنگد همونطور که دوست دارد پدرش هم پیشش باشد با صدای بلند فاتحه خاند زمین زیر پایش نرم و مهربان بود هر گامی که بر میداشت احساس راحتی می کرد. لذت می برد می زمین هم از اینکه او رویش راه می رود است و لذت می برد. مقصدش بنفشه دره بود که باغهایش در پایین دست میان دره دیده میشد. کسی در اطراف نبود صدایی جز صدای سایش سینه باد روی سنگ ها شنیده نمیشد. در کنارهای شیبی که انتهایش آب رفت بود دستهای از زنبقهای آبی و سفید با حیجان قد کشیده بودند و گلبرگهایشان هنگام وزش نسیم بالبال بال, بال از دور صدای پارس سگهای های گله می آمد. صدای سگ حس بدی را در او بیدار می کرد. به یاد گرگ میانداختش و آن شبی که به نظرش از جنس کابوس بود. بعد از گذشت چند روز نتوانسته بود آن را باور کند. می خواست از آن شب فاصله بگیرد تا در فرصت مناسبی به در مورد آن فکر کند. می خواست را از عطر زنبق و باد و بنفشه باشده کند، با شوق کودکانه در باری که راههای پیچ در پیچ و بازیگوش بدود و باد به صورتش بخورد و او نفس بکشد عمیق عطر ابر و خاک و آسمان ها را با وجودش عجین کند. به نزدیکی بنفش در رسید از آنجا قبرستان روستا دیده میشد. راهی که از جاده ماشین رو تا به اینجا زیر پایش گسترده شده بود از وسط خرمنجاها میگذشت آن مکان محووته صافی بود که اهالی پنفش دره در تابستان محصولات درو شدهشان را آنجا خرمن می کردند و میکوبیدند و باد می دادند و آخر سر گندم و جو عدسشان را بار می کردند و می بردند خانه. هر خانواری جای خودش را داشت و خرمن خودش را و همینطور خرمن کوب خودش را که عبارت بود از دو گاو قوی یا یوق بزرگ و خرمن کوب چوبی شبیه لنگه در. با دندناهای آهنی یا سنگی که بچه یا بزرگی روی آن می ایستاد یا می نشست و گاوها آن را روی کولش های خشک می چرخاندند آن هم زیر آفتاب تابستان و باد مناسب فصل خرمن آن سال که با پدرش آمده بود بقایای چند خرمن را دیده بود همینطور خرمنکوب ها را که روی کولش های خشک دور می زدند و دختر یا پسری خسته با سر و روی خاکالود رویان ایستاده یا نشسته چرخ چرخ میخورد. حالا آن زمین‌های مسطح پوشیده از سبز و زنبق‌های سفید و آبی شده بود. در همان نزدیکی گله کوچک گوسفندی در شیب تپه مشرف به خرمنجا در حال چریدن بود. چوپانش دیده نمی‌شد اما صدای آواز هزینش را باد با خود می‌آورد. به تپه نزدیک شد. در شیب آبکندی نوجوانی با موهای بلند و آشفته یله شده بود در تیغ آفتاب خروب. او را که دید آوازش را قطع کرد. گونه هایش گل انداخت و با شرم از جا بلند شد. هسته نباشی؟ چه خوب آواز می پسر از خجالت سرش را پایین انداخت و با ته چوب دستیش مشغول پوش دادن خاک شد. اسم چیه؟ مقصود. پسر کی هستی مقصود؟ قاسم. نمی با این حال گفت صدای خیلی خوبی داری، زنده باشی مقصود سرش پایین بود و با ته چوب دستی همچنان زمین را سوراخ می کرد و خاک می افشند. برایش دست بلند کرد و به طرف بنفش در سرازیر شد در هاشیه روستا دو درخت پیر بیت کنار هم بودند شاخه های در هم تنیده بود از دور گویا در آغوش هم قنوده بودند نزدیکتر که رفت نشانه آتش را بر تنه تنومند دید که به اندازه ی حفره روباه دهان باز کرده بود. آن دو بید و گویا نشان زوال باق بزرگی بودند که روزگاری در اطراف بنفشه در نگاه هر رهگذری را به خود جلب می کردند. حالاند و بازمانده فرتود از ترس طوفان به هم تکیه داده بودند تا چند سباه دیگر سر پا بمانند. خانه مادر بزرگ ده بود. بعد از آن دیگر باغ بود و چمنزار که همراه رود تا دریاچه و از آنجا به شهر کشیده میشد. خانه در میان پرچین کوچک چوبی قرار داشت. با یک دروازه ورودی به طویله و اتاق نشیمن. اسماعیل از راه کناره دور زد و خود را به خانه رساند. همه چیز مثل سابق بود. خانه کاهگلی پرچین و درخت های بلند بید و چنار که مشرف به حیات و خانه بودند. پایین دست کنار جوی آب، گزن زار، پر پشت و دست نخورده باقی مانده بود. دروازه را آسان باز کرد و داخل محبته شد. چند بوته ی گل سرخ افسرده و ساقه‌های گل ختمی گوشه حیاط حیات دیده می شد. به در خانه نزدیک شد. چوبی بود و قدیمی. با چارچوب موریان زده که به زحمت خود را به آسان چسبانده و سر مانده بود. آخرین بار چند سال پیش مادر بزرگ را دیده بود. آمده بود تهران برای مجلس ختم پدر اسمایل، چند شب هم خانه آنها ماند. تمیز بود، با دست های چروکیده اما هنابسته، قد بلند و حال لحن مهربانی داشت، به هر بهانه آنها را نوازش می و می و به اسمایل می گفت، بیا پهلوی من یادگار پدرم، نور چشمه، صدایش گرم و گیرا بود، درون چشم روشنش محبت مثل دریا موج میزد و زمانی که نگاهش میکرد، اشک مثل حلقه درخشانی دور چشم هایش جمع میشد. حال مانده بود که چطور با او روبرو شود و چه بگوید. نزدیک در خانه ایستاد و کوبه ی کوچک و زنگ زده را چند بار آهسته به گل میخ زد. کمی منتظر ماند، صدایی از آن آنسون نیامد، باز هم زد، بلندتر و بیشتر، پارس سگی از پشت دیوار همسایه بلند شد. کمی بعد پوزه بزرگ و لبهای آویخته و آبچکانش بالا آمد و با دیدن او بلندتر پارس کرد. چند سگی دیگر به او جواب دادند. کوبه را محکمتر به گل میخ گوگید. صدای لرزان و ضعیفی از آن سو آمد. کیه؟ منم امانا اسماعیل. کی؟ گفتم اسماعیل. کدوم اسماعیل؟ کمی بعد صدای کشیده شدن کلون از پشت در شنیده شد. سپس درب کندی و با جیغیری بلند بر پاشنه چرخید و آهسته باز شد. آنا در حالی که با شال رویش را رو گرفته بود، در آستانه شد.